ماشین مشتی مندلی نه بغداره نه سندلی ببینیم شما چی زیاده شلوغش میکنه بابا یعنی اصلا شما زبان ها این, این دیگه با یه قوره چی سردتون میکنه با یه مبیز گرمی والا بابا ما را این زوری نگاره کن ما هم سی ساله قریبینیم تو از نزدیک وزدیک میبینیم دیگه رو چند تا این چه حرفی؟ خب زبونهای الان باسبادتارن که باشن ما هم که دیگه از تو غار نیمدیم برونی که عزیز من که آخه آفزی آخه نه یه حرفایی میزنی آخه میگم اصلا اگه الان بیان با من مصاحبه کنن بگن تی؟ بگن آقا دشتی به نظر شما مشکل اصلی ایرونی میدونید میدونی چی میگم میگم زبگیریه والا اول انقلاب همین مردم بودن عکس امامو تی؟ تو ماه میدیدن دیگه مگه. الان هم ولشون کنید چی اکس یکی دیگر رو میبینن یه جا دیگه نه ببین نه ببین من خودم تو همین دیروز زور نمیخواستم رأی بدم به زور شما آبدی. اینقدر این دختر ما تو گوش ما خون اینقدر هی ای رعف اومد هی رعف اومد, اومد. گفت بابا پس آینده من چی میشه و اصلا من دیگه رأی که ایچی آذر بودم یه پولی هم بدم اینه دست, دست, دست سر کسل ما برداره ول میگه گرم من که آخرش عبزی آخه کاری خودمو رو کردم من که به اینا رای نمیدم که نو چرتم. تو برگه رایم هم نوشتم همیره آیده مستی <تصفح> طبام شده رفت من دیگه به این آخوند مخونده تی نمیدم آبزی. زونم سی شده ترا قاطی میکنی آبزی رایم بوده دلم خواسته اونجوری بدم مال من بود م... م... مگه نه مگه من به شما میگم ترا به اینا رای دادی عزب آبزی ساردیواری اختیاریه یا شما خودتون که بدتر از اینا اینجا بابا دلم خواسته تیم اومینا رای دادم عزب آدمی زونه پیاده میشه اینجا عبزی داری تون میریه ببین از ما گفتم باشه ببین صدا تو بیار پایین نگه میدارم خدای پولی به ما بده یه هم تیم باز بده به ما بیا بابا بیا بیا باره ما با خدا تی خدا روزی تا یه زدیگه حواله بده اینا ما زیر بار زور براتی نیستیاماماممان گوش میکنیم اصلا حالا که این زوری شو